و جایمت و همه هر جایمت الله حلو رح حلو رح. از شد که توافی از روانیات رو برکم آیدی ویدید در جهت خبر رو کندم یکیشم توافیست که دلالت بر کتابت حدیث بکنند اولیشم این دقایت عبود بخیر بود ازدفرمون شما بخصیم میکنید حتی تک توزید این باید همون که را از کردیم به دو سه به سنر و مصدر محل شده البته همش خالی از اشکال نیست اون بهترین نشون نیست که در کتاب کافیست که اون هم خالی از اشکال نیست از کنم تراجه بگید این احادیث احادیث کتابت خب یکی خب ظاهر خودش منابت باشه که علیه مسلام تحکید بر کتابت حدیث کرده باشه لیکن این احتمال هم داره که اشاره باشه به یک نزاع معروف این در کتب گرایتال حدیث اهل سنت یا کتبی که را شدید این شده مثل آدار و راوی مثل کتاب تحمید و لعب. کتبی که این جهد نوشته شده از زمان اصطلاح دومی این بحث پیش آمد این بحث نسبت جازه شده به زمان رسول الله لیکن به صورت جدی از زمان دومی این بحث محروف شد که آن کتاب تحدیث بشه یا نشه از شده چون زمان اولی فاصلش کوتاه بود دستال و نیم تبیه خیلی این مبارث مطرح نشد در زمان دومی خیلی مباحث اساسی مطرح شد که واقعا تحصیل بذار بود ها در دنیای اسلام یکی از اون مسائلی که مطرح شد همین مسئله کتابت الحدیث بود ارز کردم من چند بار ارز کردم متاسفانه در حوزه های ما اینطور مشهور شده که این شخص مانع از کتابت الحدیث شده کتاب هایی هم میرشتن. من توضیح همه ارز کردم اون چی که در زمان این شخص مجموعاً در مسادر افرسان ندنه شده و شوافت هم محایی دومینه سه چیزه این من چند بار ارز کردم برای تحکیب یکی تدوین و سنن رسول الله حاصل تدوین خواهی خواهی به کتابت بود اما چون همه اکثریت صحابه هنوز موجود بودن نیازی دیگه به خبر نبود. یعنی این ها میدونست که پیه همبر اکرام جاقی سنن اینا این طرف بود که از کردن ظاهرن ریشه اصلشان و امیر و الله علیه بود که ما الان که صحابه هستیم بیاریم سنن فیغمبر رو مدربن کنیم و بنویسیم مثلا سنن فیغمبر در غزور سنن فیغمبر در نماز سنن فیغمبر در حج از کردم خصوص حج چون فیغمبر یک بار در قیه به ده سالی در مدیگه تشریف داشتن یک بار حج مشرف شدن عمر مجموعا به اصطلاح قبل از حج دوبار یعنی بنابراین سه بار عمره بشه عملا دوبار شد یکی سال شکم تشریف بردن که منتعی شد به سول حدویه به عمره تشریف بردن بنابراین سال بعد سال هفتم سال هفته هم بر عمره تشریف که معروف در اصطلاح عمره و قضا سال هشتم هم به حساب غنیمت با حالت جنگ با نبی مکه شد در ماه رمضان بعد تشریف بردن برای طاهر که جریمه حوادث به اصطلاح اتفاق گفتند بعد از برگشتن جنگ در سال هشتم عمر انجام دادند و برای هر انجام دادند سال هشتم به هر انجام اما عمر را انجام داد این دوتا عمره سال هفته و سال هشتان سال نهم هم ایشون کل هستانی بردن نه عمره که قصه براعت رو از تعمیر صوره براعت رو بردن از مسلمان هم یعنی کمی هشت هر دو سال بیشتر و بودن سال نهم با اینکه مکه در خیلی سال ده هم پیران بردن, بردن. بردن یه بار کل و قبل از اینکه در که شب روز جمعه بود 29 صفر روز حج تا شبين ايام نماز جمعه كون در اونجا رافتا به طرف هلديز اون شب رنگ روزه بود در روز بعد که شنبه بود احرام بستن الاز. این سفر هست نصفه خوب پیشه شده این سفر حج به اندازه اون یه یه بار بود. فقط در فقط در تفسير فعل رسول اللهه مثلا فیرنبر مسلل سر رو در منا تراشی ده اهل مسلله فقط احل لازم این دیگر میشه تراشی چیه گفتن نباید منا باشه الى آخری دیگه مطالبشه نیم کار بعدنشون فیرنبرت هموندن قبل از چون بنا بود که بعدی از مطالب حج عوض بشه و اضافه بشه به اصطلاح مثلا در حجی ابراهیمی عمره با حج نبود بنا بود که عمره امی عمره تمتال شما من دیگه خواوزه بحثه حج و عروستاش بشن ذکره قبل از الله تاش تمام خود و انی مناسک ها تعبیرش این منشاء شد که این حج احتمام به نظر مسلمان ها این منشاءش این شد که معلوم شد که به خاطر تغییرات در حج بدن از حج ابراهیمی عوض بکنن از امور خوذیات بشه بعضی از امور در پی زمان اشتباه بود مثلا تصیرف من بعضی عمر پراندا تغییر دادن حضرت ابراهیم حدود حرم را قرار دادن. پیغمبر توی این حجی بود یا توی حج همون سالیش بود محل کعبه رو باز گذاشتن. اضافه بر حدود حرم میقات قرار دادن. میقات اون پیغمبر ما این نیست. که هست اینها جهل رسول الله. حضرت ابراهیم میقات قرار نداده بود. اونی که قرار داده بود حدود حرم بود. فکرت می‌کنه؟ هر از مجموعه تغییری که حالا میگواذ این مخلط رو بعد دیگر در زمان اولی خیلی و هلی آقا جد نشد زمان دومی که با فتوحاتی که شد توسه ای اسلام امیر و نومین پیشنهاد دادن که ما سنن خیلده رو برای تقدیم بکنیم خوب در قصد این سنن خیلده این قیل از کتابت شده حدیثه این بحث دیگه انگه مثلا این سنن وزور رو بنویسیم خانا این توضیحات بله؟ سیر <تحدث> <موجوده> <ممتضح> و چلون پر اند. اونو بذار. نمیشه چون علی سعی میکنه خبر نمیفته. امیدواریم که برنامه تو عزوجیره. تو نماز کن. تو زیتون خو این کن. تو سجوت این کن. نه چلون کیم. باید. من از شما گفتم ده نکر شدند. بیست نکر شدند. میشه حالی سخبار وارد نمیشودی. کلار وارد. من تو عمر یه مدتی فکر کرد من چه صبرن از کردم عمر خطرکرات یعنی خود احلی سنت و نوشتن آشنایی با یهود داشت او در دنیا یهودیت کتاب بنامی مشنا هسته گفت در عبادشی مشنا که مشنا احلی کتاب یا مسنا تا مسنا کتاب تخبر میگه چون مسنا یا مشنا بعد از تورات کتاب مهم یهودی هست این اشتارش این بود که اگر ما سننه بزنیسیم چیزی شبیه میشنا میشه. الا این که داره درست آورد اصلش چیز فرقی نمی روزی وقت دیگه چند بارم صادقاً صحبت کردم و تکرار فقط یکی این از با تدوین سنن رسول الله مخالفت کرد اونی که عمر به عنوان خودش مخالفت کرد یعنی قبول داشت بنان اشتباه نشه این گفت این اگر بشه کتابی در واقع شده که نشا در دنیای غیبی در مقابل تورات قرار گرفته این کتاب هم در مقابل قران قرار بکشیه. حالا ظاهرا هم حالا باقر علیه السلام فعلا نمیخوام وارد اون بحث بشم. پس یک بحث این اینه اشتباهه. اینو عمر معنی کرد. یه بحث دیگه بحث کتابت حدیث بود. اون که به سنن نداشتن. مثلا میگه ما با علیه السلام این کلا ده سارا اصل بودین، فعلا جلب زدن که مربوط به سنن نیست. راجب کتابت الحدیث. خایا از رسول الله بنویسی میادن؟ این مطلب به زمان صحابه برمیگرد به زمان خود رسول الله دو تا از صحابه دو کلام مختلف از رسول الله این طبعا تو زمان عمر شدت بداید نه اینکه عمر نه ای از کتابت حدیث کرد نه از تدوین سنن کرد نه کتابت حدیث وقتی در کتابت حدیث دو معنا بین صحابه جا افتاد یکی کلامی بود که عبدالله به سر امرعاست میگفت این عبدالله پسر عمرو از خلال خلال سیاسی نه، دنبال این که به اولون با سمت خطبه پدر نبود، کلا از خطبه خارج بود. ایشان از همون جوانیش دنبال خط علمی بود. تازه مالیه و خوبی هم داشت املاک پروان در فائض داشت. دنبال همین کارا بود. ایشون جزو صحابه نادر از صحابه است که از سال 8 هجرت دقیقا وقتش هم معجل ماه قمر سال 8 هجرت توی فتح مکه آن هم حدود پونزه سال و نیم بود بین پونزه و 16 سالگی. بی تصور بود. ما بین پونزه و 16 سالگی. ایشون اولین مطالبی رو کنه بش کلام بود که پیغربر به اون فرمازاری که برای مسئولی که حاکیم که برای والی که بره مکه رو از ادتا به اون چهار تا فتلت فرمازن نه هم بیان به صافه بعد یغبت غرف امالای یغبت چهار عبارته که بعد با هم اسلام محل کلام داره به شخص حاضر بشه اصلا معناشم چیه محل کلام این اولین عبارتی بود که ایشان نوشت خب بعد قرش این گفتن آچه نوزی پیرم بشه بشه چی میشه حالات مختلف در رسول الله عزیز میکنی یا رسول من اون خالا از شما بمیسم. اینا میگن ننیمیسی فرموندن اکتوب فبلدی به اصطلاح به اصنی و یا فبلده انهو لا یخفتو من هنه اشاره به زهان و برای کردن الا الحق من قذبنات بشم خوشحال بشم زبان من همیشه ولی ازا یک خط این بود که بنتیزیم بگم نه مقابل خط دیگری بود که ابو سید خدری که این ارتدار بخاریم آمده پیغمبرتان من کسران به قید القرآن شیعن فلیم برو او از قرآن اگر یعنی قرآن نمیشه نشوان نمیدار قید از قرآن این معروف شد به من ای حدیث شد تاریخ کتاب پس این بر میگرده به زمان تا صحابی این به قنار هم بر نمیگرد روزا که شده به این زمانه این آمدن گفتن نه نه نگیسیم پیغمبرتان فلیم خون اصلا و خب دقیقه بکنی از صحابه هم همینطور شد یعنی بعد رحلت رسول اکرام اده از صحابه اصرار داشتن که بنویزیم و داره اصم امیر که امانا می روشن ام از صحابه اصرار داشتن نمی اصلا کتابت نماشه من کسیم با بیم بحث شن بعد هم ادامه داده کرد توکیه ها چیهی که مثلا انسان بنویسه بعد حافظش کم میشه زریج میشه بنویسیدم چی میشه اختلاف میشه چی صحبت من یه وارد اون بحث میشه بتوید بحث این طولانی خاصه خودش من باقید تا به اندازه ای که این بحث باشن از زمان صحابه و از زمان تابعین حتی تا زمان با که بعد از تابعین هم ازدهی در همین خط بودن که ننمیسیم ازدهی هم بله خب، طبعاً هم زادن این خطیم از از خود طبعی چون تدوین شده راه گرفت، ظاهرا تدوین کرد که ننویسیم. اما از کادر اینکه از این مواصع نه سنت، یه نفر خود عمان از نامه نامه نوشته به یک فرماندارش در آذربایجان اسم می‌داره. مثلا فنی فرید رسول الله یعقوب، یه عمان خودش نوشته حدیث نوشته. حالا من نمی‌خوام وارد تفصیل بحث بشم، چون بحثش طولانی، این خودش یه بحثی شد، بنویسیم یا ننویسیم. مهیارش هم این دوتا بود یکی عبدالله قصر امرعاست بود عبدالله نعم یکی هم ابو سعید و خدری البته آقایی من بگوید ابو سعید و خدری رو کسایی که میگوزن دویگی سیم بعدها توجیه کردن که مراد پیغمبر هر کن گاهی پیغمبر آیه رو میگویدن از خودشون یک کلامی در آیه میفرمودن این منکر کتبه انه غیر القرآن هم یعنی در وقت خواندن قرآن اگر من یک توضیحی دادم توضیح من پاک کنید كلام من با من قرآن اشتباهی روزی شد من کثرہ عن قرآن القران شیئا فلیم هو پاسش بکنه نه اینکه اگر سنن من نویش شرح حالات من مثلا گفت با رسول خدا کوشش شد این پاک کن نه در وقتی که من قرآن می‌خوندم مثلا یک غایب خوندم گفتم این یعنی خدا ورزشم کلمه من دنبال اون آیه نوشته من کس همه انی غیر القرآن شیعه اگر صحبتی از من بوده در زیل آیه که مثلا جنبه تفسیری به اصطلاح ما یا توضیحی داشته این رو پاک کنید ولی که قیلاتات قرآن حفظ بشه چیزی با قرآن محروب نشه اون کنامی از اصلاح و اون و توضیحه جای ای باشه علایو حال این راجع به این مطلب ان شاء الله فکر می‌کنم بعداً پس این مطلب در از کتب اهل سنت نمی‌شه از صحابه‌ای که مخالفه کتابت نداشت فلان فلان از تابعین که سن مخالف نداشت بعد از تابعین این روچاشد مخاصم پس علاوه این دو مکتب مطرح شد اکثر از تابع صحابه‌ای که موافق بودن در خود کتب اهل سنت حتی نام حسن رو هم گردن ظاهراً موافقه مستجاب بشه دلیله حسن درشود چون خود سازنده هست خود اهل سنت در این بحثی که در کتب حدیث این بحث قدیمیه این از جواب های حدیثی قد از ازاست که وجود داره کسانی که واقعا با کتابت بودن مثلا علی یا الحسن با این اسم بودن این یعنی خیلی عجیبی که اسم ما مشتوا له جو که ظاهرا مراد چون غالبا وقتی بیان حسن مرادشون حسن بحثیش کشوار نشه اما اینجا ظاهرا مرادشون ما مشتوا ببینید خیلی عجیبه که مثلا اینا این به حساب مطلب ما مشتوا رو در صحابه مثلا در مقابل عبدشید خدی و دیگران قرار داده. حالت بعد در طاوین هم نوشته، نوشته مثلا فلان از فلان از صحابه میگفته نوشته که فلان و فلان مصنف نوشته بشه این روایات این روایات ما اوشوه بیشتر نظرت دیگه اینکه بخواد اهل بیت موافقه با خط کتاب خیده. روشن شد؟ اولا از کنم خود احمی و محنی سامونده علی مسلمی نبشتن این قطعی یعنی وجود کتابت به خطه اوارکیش بود از کنم سال دارم وقتی که بنا شد سنن تدویم بشه اولین باری یعنی همی که بنا شد سنن رسول الله تدویم بشه من این شهرش کنم چند بار گفتم این زمان عمر بن عبدالعزیز بود سال و صده این دستور دا سنن تدویم بشه و برای تدوین سنن از کجا میخواستن مایه بگیرن این توضیحات از هستن یکیش هم نامه های بمندن دستور دادینا رو جمعوری بکنن مثلا نامه هایی که برس کنه اده به, به اصطلاق یمنی ها و غیر یمنی ها از کنه تا بعضها در مسادر اقلیه اسلامی همین نامه ها محصد تو احکام بلادی تو مسائل مالی یا این کتابه الانواله ابو اغیر که 22-22 وفاتشه زمان از در جماعت بوده از قسمت خایره که از رسولات نحفو میکنه ما نامه های حضرته نامه که از رسولات به یمن نمشنم بزرگانه ادهی از این نامه ها را الان هم الان بعضیش هم موجوده ها از که از صحب اونا بحث بگیری در این مکاتب رسول جمعالی شده. ادهی از اونها را هم میبونی نمشن را که حتی به وعدی او دردی حالا نامه متعددی بوده یکی از مسادر اصلی که موسنون ها در یعنی زمان عمر این کار نشد متاستفاده زمان تاقیی در نشد تا سال صد بعد از آمه ها می زد تک و توکی از آبه زده بوده عمر این عبدالعزیز اول این کسیست که به فتح این کار می آسد تا سال صد این کار رو شروع می‌کنه سال صد یکم تو می کنشد من اومهی خبش میکنه. این کتاب ناقص می عملا اون سنت که از من بیشتر از اقوال موقع مالک عملا نه این فقه و تفریعات و که از اقوال رسول داست. و خود مالک حدود سی ست رو راه رسیدن به سنت پیغمبر اجماع علماء مدینه میدونه فقت میکنیم چون یه بحث کلیه الان شما هم با سونیا بحث بریم بحث رو با در معیار عام انجام بدیم ما نمیشه که مواردی که در دنیای اسلام مطرح شده فقط از یک خاص ببینیم این رو شما این با خود اهل سنت هم بحث بکنه هست. یعنی ببینیم لاحقاً 300 مورد رو مثل مالک در سال 150 مجبور میشه برای اثبات سنت پیامبر حجج بکنه به اساس اصل اجماع اهل مدینه علما اهل مدینه علایه خادم این نکته در ذهن آیون باشه که در روایات ما تأکید شده که یک امیر مومنی اینسا مقاعده هم در زمان پیغمبر و هم بعد از پیغمبر قادر به کتابت بودن و نوشتن دیگه همارا چه به نوشته است؟ هستم چند بار صحبت هم طولانیه بعد هم باز خود علم معلی مستلام روی کتابت تأثیر اعتقاد داشتن خب اینها. بل واضح ویلاعت میکنه که ائمه علیه السلام به حدیث و این احادیث مکتوب اعتماد میکنه اجواله خوبه اما مشکل کار اینه که یک معیار معیاره تعبدی نداره حدیث شماره 78 این احادیث مجموعه احادیثی است که نزعت کفابت میکنه در همون دعوای معروض بین صحابه من شواهد اول را تکلیل یه صحبت دیگه همزمان امر شد مثلا امثال ابو هره ابو زیاد حدیث از رسولانه احتمالاً عواصر ایام امر باشه امر این بحثم محصول کرد که زیاد حدیث نقلکه از رسول الله تو تو جوره راست قاطقاتی میشه و تو داره یه ابو هره و میزن که اینقدر زیاد الله ترکس رو لحدیث از رسول الله پس یکی تدوین و سنن بود یکی کتاب اصول حدیث بود یکی علی اکسار رو مندن حدیث بود این تا چیزه نه داری با همدیگه غرباتی میشه اینا رو اشتباه با هم که اگر صحبتی هم اهل احلس شد معلوم باشه که بحث چیه حدیث شماره 75 بحثت به این کتاب در اصول کافی محمد بن یحیا استاده ایشان که بسیار بزرگواره، احمد بن محمد مهیسا یا اشعری قومی بزرگواره. انه لحسن ابن علیه مفضال که از کلمی شده ابن فضال پدر حسن مفضال پدر و مرحوم احمد عشقی به کوفه آمده و آثار ایشان رو با خود قوم برده خوبه یکی از راه بسیار خوبی که الان در دست ما حسنجی با آثار ابن فضال پدر همینه این که از راه بسیار بسیار خوبه راه است که مرحوم کلینی به دو بازتر ابن فضال پدر مرحوم میکنه من ابن بوکر که ایشون هم فتحی هست مثل خود ابن فضال و ابن فضال زیاد از عبدالله ابن بوکر نظر میکنه حسوسایشون فقیع هم هست از بزرگان فتحی ابن بوکر چند با ارز کردن ایشون پسر برادر زرار هست. از خاندان زرار است. این که خاندان زراره چون بعدها در کوفه با این که زرار حدود ده, ده نفر بودن ده تا بزن تا 17 تا گفتن 14 تا 17 لکن به خاطر عدم از زورالی، بچای مهیب نظر را مثل زورالی. همیش ابو وزورالی نه به لکن به خاطر عدم از شدن به خاندان این کس های زورالی از و که توی این درات کتاب بکن ندار تو حدیه ایست از کلم ایمه علیه مستلام مثل ارمیر مومین اصرار رو کتابت داشتن کتابت میگین به کتابت آمنه تمدون در بشره یعنی شما کتاب رو بکنید جمع بکنید فقط کارایی که خودتون میکنید زمانتون باید بگیم در دیگه درصد نوم درست مقانی علمی شما از دوی میره مثلا سر تمدون و سر فرهنگ و سر سر بقاقه این کتابت آسایی که از پنجزار سال قدیب بیشتر باقی مونده به امروز می توانی بونا دسته داشته, داشته از روایات دیگری که در مانحنتی از شماره 76 در کتاب تحذیب محمد بن احمد ابن داود ایشون محمد بن احمد ابن از بزرگان قومه در حاقه ساکن بغداد شده بسیار جب کتابی به نام مزار زنه این ابن محمد بن احمد دامون کتاب اونها مزار معزم این کتاب در همین کتاب شیخ توسی در جلد شیش شده بباشتم هم در جلد شیش, شیش محوم شیخ توسی در مزار آمده بسیار مرد بزرگواری خود این شخص و کتابش هم قابل اعتماده و که من چند بار از کنم هموزم نمیگوریم این نسخه ای رو که ما نگاه بود شیخ توسی خرابی داره سنداش تشیش داره احتمال دیدم نسخه شبه نسخه دقیقی احتمال دیدم احتمال اینو دیدم نبیدم محمد نحمد بن داود خودش من بسیار بزرگ باری از کنم چند مثلا همین زیارت مختصره یه حضرت زحراس آمان باری ها چون زیارت مختصر داری یا مرتحنه یک کهنه که الله لزی این منحسن از همین کتابش همینه داود محمد نحمد یه زیادت مفصله در تحضیح داره که میگه انشاء علماء است ولی علماء یا زرون ها بهاده زیاده این زیاده. این 3-4 سفره اگه این راستم آزمه خونده هم باشه. این آقا محوم شیخ خطوصی از این کتاب ایشان انا ابن حسین احمد بن محمد بن المجاوره انا تصویرش قال حدث علیه ابو محمد ابن, ابن المغیره الکوفی احتمالا مثلا یکی از این محیره معروف باشه احتمالی زنده بودن آله حدیثانا حسین محمده به مالک این حاکز آه اندخیه جعفت این جعفت تضعیف شده رسمن تضعیف شده اما به نظر میاد این قدر ضعیفی که آین مسلم گرفتن نباشه. علایه ان رجالی یرفه همون خب این قدر زعیفی چون مشکه به اصطلاح ارسال هم پیش آن فاده كنت اندجاع علی محمد سلام و علی مال منظر این در کتاب فاضلات باهویی داره برای زیارت رسول و زیارت قال قالیاب مورد منظر جدی عارفن به حق كتب الله به کل خطه حجته مقبوله و امته محموده اونکه که من تو ذهنمه ها نمیتون نصفه بنا. فکر میکنم تنها موردی که ما استهباب زیارتی پیاده داشته باشیم ما در همین امیرون به کل کلی خطبت همین پیازه هست. من در بقیه همین الان یادم نیم که بنا تو ذهنمه که تنها روایتی که داریم در این که پیازش استهباب داره خود امیرون ممنونی سامو داره شاید هم بخواست که تو که کوفه بوده خودش به صلاح خودش هستیم ایش درکی که نداره ترمون متصله شاید از کوخه مثلا پیاده میاده هم برای زیاده شد. به کل خطرته اگر آنو کام دیگه نگاه به نظر من که در همین زیاده هم پیاده داره داره؟ من از زهنم فعلا میرم امونی هجتا محبوله و عمرتا محروره اله همقا یاد نمازه او تو کادر حدیث به ما از زهر این رو اینقدر ارزش داره میاد در حدیث شماره 17 که دیروز خوندیم شماره 78 حدیث ده علی ابن از بصائر درجه از شنا علی بن اسماعیل از اشای القومه توصیف هیچ واده واضح واضحی نداره بعد نیست قابل اعتماد موثق طلحه من خمزت ابن عبدالمنطلب ابن عبدالله جعفی این لازم مقدوری از اسمشونه خصوصیاتش اختلافه چون اینو در حلیث بعدی داره خمزت ابن عبدالله جعفری یکیش جعفری یه جعفی قال دخل فعلا رضا علیه السلام رمعیه صحیحه سون او گرتان سون فیه ان جعفر منصاده انا دنیا مثلت لساق به حاضر ام فی نسل طبقت الجوزه سه یک پوست گردو سه گردو 기다، واسه بیا دقیق که داخل پوسته باشه. یعنی امام اینطور اشراق در دنیا داره. سوال يا حمزه لا اله الا حق كن، درست، فن القلوب و اله ادین. اینو یه پوستی پوست ادین پوست. این یه پوستی متراکم. واسه خود مرحوم بصائر در جزار حدثنا عبدالله بن محمد این عبدالله من برادره احمد ابن محمد احمد اشکالی ترانستیف بازیم برادرش هم من غوا این به جای اونجا موسن تلهه داره ان محمد ابن خالد ان حمزت ابن عبدالله جهتری ان عبدالحسن که ظاهران احتمالا ظاهران حضرت موسن جهتر باشه لیکن به غیره روات قبلی امام رضا رو باشه کس فی زهر قرتاسه این عبارت موشه این اینکه مال منه عبارت خودم نوشه اون عبارت قبل شده ما در امام جهر صادق سامن هند دنیا ممثلتون در امام کفل قتل جوزه اینکه من نوشتم و دفع توی دعاق الحسن حسن ما قلتو جوه تو پدار امام اصخاب دار نوشته من نوشتم بعد گفتم اصخابنا رو حدیثت ما انتر توی غیر عدمی احبه تو ان اسمه هونی قاله فلن و رفیق جمع کرده حتی ورن تو انه هق اگه شب فعله این رو سنگی برد. قال خوه حق و بله این مطلب درسته این که اسم خنوم امام فرن نوشته نوشته و گفتم بیه حدیث از نرمی کردن حضر قبول فهم فحول اینو در یک پوستی به اصطلاح بنویسیم اینم راجع به این حدیثی خالی از برزشکار سندیز اما اصل درسته نیست. که تأثیر تأکید در بر کتاب حدیث چماره این در اوال لالی شده انا هممال ان ابن محمد بن اصحاب انا امر بن قال قلتی رسول الله اک کل رو متصل, متصل باشه کل ما قال نم قلتو فرزا و قال لا فی کله اما الفق این رو ایشون از کتاب الله علی ابن عبیجم هور نهار کرده ایشون رو از کنه به عهد یا در یا در ما اصالی این متعدد اینو اینو مسیع عبدالله پسر عربه که قصش از دل آورده این سند در کتاب اهل سنت به این صورته هر سنده میگه در کتاب اهل سنت به این صورته از همین کتابه کتاب عبدالله اسمش هم صحیفه صادقه بوده شه مثلا akhirnya اسم چاپ شده و نگارش در جمعش شده خود اهل سنت این به معنی اینطوریه هر این امیر بن نشوهه نغره عمر آسر نبوی نبوی عبید همون شعیده. ان جدیی مثل همون که دیروز کردن یه جدیهی به با عبید باز با نه به خودش اینجا محلا خلاف است هم ما علا خلاف القاعده داشتیم که دیروز خوندیم پیروز خوندیم هم حضرت سنت علا خلاف القاعده دارن و از اینطور خونده باشه جد عبید و یعنی اون جد که عبد نسب کاملش به این صورت این بن شعی بن محمد بن عبدالله بن امرعان این محمد در وسط هست و توضیحاتش از کردیم ایشون در زمان امام صادر رقبات پیده کنند ساله 26 ایشون یه مجموعه که پاب مانندی و از پدرش از جدش از جد پدرش از عبدالله نرقب کنه به اسم از صریفت و صادره. از همون وقتی که این کتاب پیدا شد محضن کلام شد توسه یه جهاز کرده ادهی از اعمه و بزرگان اهل سلطنت او رو قبول ندارن بزرگان بزرگانش دارن اینه مثلا بخاری بخاری از عمر ابن شعه نقومی کنه توی عمر شده خیلی ناسبی از اون نواسب عجبه ای روزگاه از اون مثل گده گده گده شده موسیم را آسونه حالای خود عمر ابن شعه بخ اگر در کتب سنت هر جدید امر ابن شعیب انعبیه انجده یعنی همون سعیفه سادره و همون کسی که از امر ابن شعیب نمی افراد مختلف یعنی انصافا اون نسخ مختلفه حالا من باید اون بحث نمی شد از کردم این امر ابن شعیب این همونیست که چند دفعه از کردم میگه وقتی عمر ابن عبدالعزیز گفت صد و امیر و رو برداری، یه کسی بلند شد گفت از سنن اصل نیاور میاره نمیشه دیگه چه طور این صدقه که برای از ما بعد صد در صد این از سنن اصل نیاور میونونون همه عمرو بن شعيب بن که جزو نواسله انا عمرو بن شعيب لكن خود بخاري مسلم از این نقل نمی کنه بله مثلا ترمذیدن عمل کنه نسائی لا میکنه احمد داره اما خود از ائمه شعر اینا در حیث این واس خود ابن حزیم. یه تیکه اوله این قبول داره بقیهش قبول نداره یه صیف و صوف صادره صادقه سعیفت و صوفیه امورمون کرده به اصطلاق الان یه که به ما این هم راجع به این بله امورم شده بله سر چون خیلی ناسبیه سره بله باز در کتاب مستدرک نهار کرده از اوالالالی این جوره کورش غلط ابن جوره حنه عطا عبدالله ابن عمر این احتمالاً عبدالله ابن عم عمر باشه ولی عمر نمیشته الان من نمیدونم دیدم حدیث برای نمیدونم اولالا علی خیلی بده درستی برد در. قال قلتیان اصلا اغیی در ام قادر نم این ما تبییدی و قال کتابتون بود بله این هم از سر در این, این که ایشون در اینکه آورده اگر اون دومی هم عبدالله ابن عمر باشه این در کتاب زیاد سلط زی اشکال بخاری همی سر وساقت عبدالله عمرو بن شایب نیست میگه این به نحوه به بوده بر من ثابت نیست سماغ شده باشه حالا من واضح بحث اهرسالت نزید میشم اون چه که مربوط به کتاب سعید اصاده ده سعید عبدالله ابن مهمه به نظر ماها یک قسمت از این رمایات عبدالله عمرو به عین الفاظ در رواز ما موجوده خیلی اما رو ساده به عین الفاظ این کلیب درد کار ما بود کاره من هم بازی بحث میشه اگر آمین میخوان کاری رو رو عبدالله هم این طریقه صادقه نه اون که که بونا مرموطه بونا مربوطه معلومت خودشون مربوطه یک مشکلی ما داریم ادهی از روایات این شخص همین حدیث که انا من از توم از رفع مالالی از به این این لفت این جعفر موجوده خانه موجود ما چهار دو مطالبی رو که هم پیغمبر اکم بعد تا به این اون انفاظ دقیقات ما از امام ساده باید. حالا تحقیق اون روایات و توضیح اون مطالب و این که اون رو تا چقدر قبول بکنیم نکنیم چی بوده اون احتیاج به شرح دیگه داره که فعلا جاش در این بحث این ما نیست که بحث ما همین طولانی شد حدیث شماره 82 مرموم کنی در اصول حسین محمد استادیشون اشعریز خومیز و جهر و قر معلم به محمد بصری توسیقی نداره برای که تضعیف یا چود باشه هنه علی ابن اصباد و بعد قال سمیعت و عبر حسن یقوع حضرت اون کنزی که بود اون کنز چی بود؟ بعد قلت جوه انتو پیدایم قال فرورم یدهو الاداد حضرت همون بعد من دست ازده یعنی حضرت تایید فرمونده اصل کتابتون حدیث را حدیث شماره 83 رجال نجاشی که فهرست رجال نیست جنبار است حدیثانا ابو عباس ابن نوم استاد ایشان قال حدیثانا صفوانی که بسیار جایی بکرده قال حدیثانا حسن ابن محمد ابن الوجنا ابو محمد نسیبی الان خیلی اوضاییشون تو ذهن هم جل قاله کتب نالا محمد که حضرت عسکری باشه نسالو با انی یک طب او یخرجه الینا کتابا نعملو به بلی کتابی که کتاب عمل باشه فعخرجه الینا کتاب عمله این کتاب عمل مراد همیسته بودی و مسائل مسائل عملیه کتاب عمل مراد اینه فعخرجه الینا کتاب عمله هست کنم قال از سخوانی او بود من خودم اون کتاب رو نوشتم فقابلده ها کتاب فقاب ابن خانبه اگر یاد جون باشه شماره سی و سه مرموم نتاوز حدث خلال اونجا گفت که هر از احمد و عبدالله ابن خانبه کتاب هم و الان محنان و عبی محمد فقال صحیح در و قال صحیح هم فهمدو به اونم یادوگارتین هست شماره سی و, سی و سی. کتاب جامال احادی که میگه ما از حضرت عسکری کتاب خواستیم کتاب عبدالله فعرض عرز عحمد بن عبدالله ایشون کتابش رو خدمت امام برد امام قبول فهمده برانا صحیحون فهمدون به اینجا هم داره وقتی که از این خوب بود آیه کامل احادیز خوب بود پشت سر اون میابود این شماره 8-2-3 پنجهات شماره با اون خاصله داره خوب بود این پشت سر اون میابود قاله کتاب نایده افی محمد بازن هم امام عسکری نسأل و معنیت رو با یخ رجعه الینا کتابا نه رو به فعق از الینا حضرت کتاب رو فرستان رسال عملیه قال از تفوالی سخت و فقابل به یا به ها کتاب ابن خالبه زیادت هروفه اون نبسان حروف یزیده تیلی شد و من, من انسکردم احتمال میدید می همون کتاب ففرزا باشه. یا ریشه کتاب ففر رضا این کتاب احمد ابن عبدالد خانه به که خدمت امام ازکری عرضه شده و حضرت رو تعیید فهموندن بعدم حضرت کتاب شبیه اوندادن ما احتمال میدین که این ریشه کتاب ففر رضا باشه این اصل کتاب ففر رضا ازا همیشه از کتاب ففر رضا ما در هر کسی باشه احتمال از سالهای دیدیست و تا حدود سیست اگر همین مال شنبخانی باشی که ادعا شده حدود 310 اگر مال صدور پدر باشه وفات ایشون 328ه یه چیزی ما بین ایناست احتمالاً اصلش یکی بوده کم شده. و شده به صدر قبولشان بین اصحاب احتمالاً اصلش به امام هسکری برمیگرد حدیث شما دردیم آقایی در خودشون این 83 رو بعد 33 اشاره میشون این مناسب با اون حدیثه ای بعدم سه حدیث دیگه دیگه این هم سرمونی؟ بعد شما سه حدیث دیگر ایست که این هم سنده خوبی نداره که مداد علماء و دماء شهدار ترجمه و مداد علماء حالا مداد دماء شهدار و مرحوم صدوق هم روایتی داره که اگر کسی موضوع رفعی علمی بذاشت مثلا این میشه این دو حدیث و داره خرابی داره غیر ازاله خرابی که داره معلوم نیست مراده از علمان مراد خصوص محدثی باشه اون دومی دو هم و علم و نیست مرد حدیث باشه پس این احادیسی که امروز خوندی بابی که خوندی باب کتابات حدیث بود بعضیاش چرا دلاغت داره اصافه زابطه و معیار نیده بع